اگر یکی از دلایل حضورم در این جلسه ها را می گفتم، شاید خیلی ناامیدشان میکردم. کردم. بین آنها کسی را نشان کرده بودم به اسم هلن نواشین که جالبتر از بقیه به نظر می رسید. زنی موسیا با چشم های آبی. تنها کسی بود که چیزی یاد داشت نمی کرد. دختر بوری که همیشه در سایه بویر بود، بدبینانه نگاهش می کرد. انگار او را رقیب خودش می دید با این حال بویر هیچ وقت به او توجه نمی کرد گویا این هلن نواشین هیچ یک از اعضای گروه را نمی شناخت و با آنها حرف نمی جلسه که تمام می شد، تنهایی بیرون می رفت. از میدان می و در ورودی ایستگاه مترو ناپدید می شد. یک شب روی زانوهایش یک دفتر نوت گذاشته بود. بعد از جلسه پرسیدم نوازنده است یا نه؟ بعد هر دو کنار همراه افتادیم. برای گذران زندگیش پیانو درس میداد، ولی امیدوار بود پایش به دانشکده موسیقی باز شود. آن شب با او سوار قطار شدم. گفته بود نزدیک ایسکای لیون زندگی می کند. یان که تا آخر خط همراهش باشم یک قرار ساختگی را در آن محله بهانه کردم. سالها بعد، روی همان خط مترو هوایی بین دانفر و میدان ایتالیا، لحظه ای آرزو کردم کاش زمان برمیگشت و دوباره روی صندلی کنار هلن نوشین مینشستم. احساس خللا شدیدی وجودم را پر کرده بود. و برای دلگرمی به خودم میگفتم به خاطر رد شدن مترو از روی بلوار و ساختمان هاست که اینطور شدم همین که خط دوباره زیر زمینی شود احساس سرگیجه و حواسپرتی از بین می رود و در یک نواختی اطمینان بخش روزهایی که پشت سر هم میآیند آیند همه چیز دوباره به نظم قبلیش بر می آن شب غیر از ما کسی توی واگن نبود. ساعت اوج رفت و آمد تمام شده بود. پرسیدم چرا در جلسه های بوییر شرکت می کند قبل از آنکه بوییر را بشناسد، یکی از مقاله هایش را راجب موسیقی هندو خوانده بود و به کمک همان مقاله اوغ‌های جدیدی رو به رویش باز شده بودند. ولی خود بوییر کمی ناامیدش کرده بود و روش آموزشش به پای مقالش نمیرسید اگر میخواستم آن را برایم میخواند و اما من چه انگیزه مرا به گروه های دانفر و رو شراکشنده بود؟ یک کنجکاوی ساده. دکتر بوویر کنجکاوی را برانگیخته بود. میخواستم در موردش بیشتر بدانم و بفهمم زندگی کسی به اسم دکتر بوویر چطور میتواند باشد. لبخند زد. او هم این را از خودش پرسیده بود. در نگاه اول، باویر هرگز ازدواج نکرده بود و به بعضی از شاگردها علاقه نشان میداد. یعنی واقعا علاقه ای در کار بود؟ همگی آنها مثل هم بودند، رنگ پریده و بور، با ظاهر جدی دخترهای جوان مسیحی در شرف عارف شدن. این مسئله اول ناراحتش کرده بود. در طول کلاس ها احساس می کرد بعضی از دخترها با خودخواهی نگاهش می کنند و او را همتراز خودشان نمی بینند. آن وقت گفتم ما برای شنیدن حرفهای همدیگر ساخته شدیم. من هم هیچ وقت خودم را همتراز کسی ندیده بودم. فکر می کردم او هم باید مثل من باشد، آدمی گم شده وسط پاریس بی و تنها در حال عبور از کنار دکتر بوویرها در جستجوی مهوری که به زندگی جهت بدهد. چیز کوچکی در ظاهر بوویر هر دوی ما را حیرت زده کرده بود. در یکی از جلسه های هفته قبل صورتش ورم کرده بود. انگار کسی ککش زده باشد، پایین چشمش کبوت شده بود و روی بینی و دور گردنش خون مردگی وجود داشت. هیچ اشاره ای به اتفاقی که برایش افتاده بود نکرد و برای اینکه حوااس ها را پرت کند خودش را سفیدتر از همیشه کرده بود. شنونده هایش صحبت می و گاهی میپرسید حرفهایش را متوجه میشویم یا نه؟ در طول سخنرانی، فقط منشیاش غرقی و دختر بوری که پوست شفافی داشت با نگرانی و او خیره شده بودند سخنرانی که تمام شد دختر بور روی صورتش کمپرس گذاشت و با ویر لبخند زنان اجازه داد از او پرستاری کند کسی جرأت نکرده بود چیزی بپرسد فکر نمی کنید کمی عجیب باشد؟ این جمله را هلن نواشین؟ با لحن آرام و بیجان کسانی که از دوران کودکیشان به بعد واقعا نتوانستند تعجب کنند پرسید نزدیک بود راجب زنی که با بور در پیگال دیده بودم حرف بزنم ولی فکر نمیکردم آن زن بتواند اینطور کاری کند. نه او و نه هیچ زن دیگری نه حتما پای موضوع خشنتر و تری در بین بود بخش تاریکی در زندگی دکتر بویر وجود داشت شاید رازی که به نظرش شرماور میآمد شانه بالا انداختم و به هلن نوشین گفتم این هم جزء اسرار پاریس است او در یکی از ساختمانهای بلند روبروی ایستگاه لیون زندگی میکرد گفتم تا قرارم یک ساعت وقت دارم دوست داشت برای آن که بیرون منتظر نمانم توی خانه اش از من پذیرایی کند ولی بدبختانه مادرش چشم دیدن یک مهمان سر زده را توی آپارتمان کوچکشان در خیابان پنجم امیلی ژیلبر نداشت